سلام بر دوستان جان و همراهان همیشگی به قسمت دیگه ای از داستان زیبا و هیجان انگیز ملک جمشید خوش اومدید. امروز با قسمت 11 هم این داستان همراه شما هستیم. امید که لذت و بهره کافی از اون ببرید و تا آخر داستان همراه ما باشید. در قسمت قبل تا اونجایی گفتیم که ملک جمشید بعد از کشتن سوسنجادو جادو در بیابانی افتاد و در آن بیابان اونقدر راه رفت تا به باغی رسید. در اونجا قصری دید و دختری بسیار زیبا و دلفریب در اون قصد زندگی می کرد که اظهار ارادت و علاقه به ملک جمشید داشت اما نمیتونست بگه چه کسیه برای همین تا سه شب از ملک جمشید مهلت خواست اما از همون شب اول ملک جمشید دچار وسوسه شدید و بی اختیاری شاد و میخواست که به دختر دست درازی کنه دو شب به اون نزدیک شد و هر دو شب موکل دختر چنان سیلی محکمی به او زد که او بیهوش شد و باز خودش رو گرفتار بیابان دید و هر دوبار هم با سختی های زیاد و اتفاقات و بلاهای سخت دوباره به باغ راه پیدا کرد و پیش دختر اومد. اما شب سوم دختر دیگه نخوابید و تا صبح بیدار بود تا مبادا ملک جمشید دوباره وسوسه بشه. و هنگامی که صبح شد و روز بالا اومد اتفاقات جدیدی افتاد که در این قسمت به اون رسیدیم. ولی دوستان صبح شد و آفتاب و عالم تا بر همه جا تابید ولی هنگامی که وقت نهار شد ناگهان شاهزاده دید که از روی هوا صداهای عجیب و غریبی بلند شد. به دختر نگاه کرد و دید اونم رنگش پریده و مثل بید می لرزه. شاهزاده گفت قربانت کردم چی شده اشک از دیدگان دختر جاری شد و گفت ای جوان سه شب بود که اکواندی به شکار گوره خر رفته بود و حالا برگشته و میاد تو با منو میکشه دستم به دامنت فکری کن شاهزاده گفت ای نازنین نگران نباش من خودم دیدار این ناپاک رو از خدا میخواستم باید که حقش رو کف دستش بذارم در این لحظه از روی آسمان نردیوی پیدا شد که دو گور خر هم در دستش بود و وارد قصد شد و چون شاهزاده رو دید چنان عصبانی شد که دو گور خر رو محکم بر زبین کوبید و قررش گفت ای بنی آدم خیر سر چطور جرت کردی به این باغ بیای به روح ابلیس قسم که اکنون تو رو تکه تکه می کنم. شهزاده رو به دختر کرد و گفت این نازنین اگر من به دست این دیو کشته شدم سلام منو به ماه عالمگیر برسون و بگو که ملک جمشید بعد از رنجهای زیاد آقابت در راه تو کشته شد و بعد هم رو به سوی اکوان دیو کرد و اکوان دیو نعره میزد و می ای آدمی زاده سر مادر من رو با سه برادرم کشتی و حالا به منزل من اومدی و در کنار یارم نشستی و شراب میخوری اگه تو رو نکشم با روح ابلیس دشمنی کردم شاهزاده هم فریاد برآورد که من تو رو تو آسمون میجستم جستم و در زمین پیدا کردم در این لحظه دیو گرز سنگین خودش رو به فرق سر شاهزاده فرود آورد و اما شاهزاده زودتر سپر بر بالای سر گرفته بود و اگرچه که ضربه بسیار سنگین بود و چهار ستون بدن شاهزاده رو لرزوند اما اون خودداری کرد و بر جای ایستاد. اکیوان هم فریاد زد که مادرت کجاست که بیاد خاک این باغ رو از صافی رد کنه تا استخوانهای ریزه ی تو رو به دست بیاره. شاهزاده گفت این ناپاک مگر چه کار کردی که این تور داد و بیداد می کنی؟ اکیوان دیو نگاه کرد و دید شاهزاده این رستم دستان بر جای محکم ایستاده خیلی بهش برخورد و چنان نعرهی کشید که کل باغ به لرزه درآمد و ضربه دوم رو محکمتر بر فرق به سر شاهزاده فرود آورد. اما شاهزاده باز هم سپرش رو به بالای سر گرفت و از این ضربه محکم هم جان سالم به در برد و با خودش گفت دیگه وقت شمشیر کشیدنه که اگر ضربه سوم رو بر من فرود بیاره زنده نمیمونم. این بود که ناقافل و با تمام شمشیر کشید و همزمان هم نام خدا رو به یاد آورد و از اون یاری جست و خودش رو به اون سپرد و شمشیر رو بر بدن آن دیو ناپاک فرو آورد و در دم جانش رو گرفت و البته که مثل دفعهای قبل با مرگ دیو جهان چون شب تیره و تار شد و رعد و برق و سائقه بلند شد و چنان طوفانی به پا خواست که هرچی شاهزاده خواست تا بیاره نتونست و از هوش رفت. القصه هنگامی که ملک جمشید به هوش اومد خودش رو در میان قلعه ای دید که از سنگهای گرانبها ساخته شده و چهل برج داره و دور تا دورش هم اتاقه و در اتاق هم بسته و بر هر کدام هم قفل سنگینی زدن شخصات از جاش بلند شد و دید صدای قوقایی بلنده و بعد هم دید که همون دختری که نمیدونست کیه جلو اومد البته همراه مرد جوانی پشت سرشون هم تعداد زیادی کنیزهای زیبارو وقتی که به نزدیک شاهزاده رسیدن خودشون رو به دست و پای او انداختند و دست و پاش رو بوسیدند و اونو دعا کردند و گفتند ای جوان ما همه آزاد کرده تو هستیم و دست از نوکری تو بر نمی داریم. شاهزاده پرسید شما کیین کجا بودین؟ گفتن ما همون آهوهایی هستیم که در باغ سوسنجوا دو دیدی که تو رو هم شبیه آهو کرده بود و ما دور تو رو گرفتیم و شاخ به تو می زدیم. و تو فرار کردی و وقتی هم که اومدی سوسن رو کشتی و ما هر کدومون شاهزاده و امیرزاده و بزرگزاده بلایتی هستیم که ما رو سوسن جادو و اکوان دیو دزدیده و در این مکان آورده و همه رو شبیه آهو کرده بود و مدت ها گرفتار بودیم و امروز که تو اکواندیو رو کشتی و تلس رو شکستیم ما نجات پیدا کردیم. شاهزاده تا شنید که تلس شکسته خیلی خوشحال شد و زمین رو بوسید و خدا رو شد کرد. بعد روبو دختر کرد و گفت ای نازنین حالا تو بگو بدونم که چه کسی هستی و چه کاری و این جمعون کیه که دست اون رو به دست گرفتی؟ دختر و اون جوان هر دو خودشون رو به قدم شاهزاده انداختند و دست و پاش رو بوسیدن و بعد هم دختر شروع به تعریف کرد که نام من آزرچهره و دختر پادشاه هیدرآباد آباد هندوستانم. اکواندیو منو از بالای پشت بام قصد دزدید و, و به اینجا آورد و چون عاشق من بود زندانیم نکرد و در این قصر من رو نگه داشت و چهل کنیز رو برام آورد که تنها نباشم. و هر وقت به سمت من می اومد که اظهار عشق کنه بهش میگفتم اگر به من دست درازی کنی سمی سم در زیر نگین انگشترم دارم که بلافاصله اونو میخورم و خودکشی میکنم و چون عاشق من بود جرأت نمیکرد که به من دست درازی کنه ولی هر شب سه جام شراب از من می گرفت و زهرمار میکرد و دستم رو می بوسید و میرفت تا دو سال قبل که رفت و این جوون رو آورد وقتی من این جوون رو دیدم عاشقش شدم اونم عاشق من شد چند شب هم با هم دیگه به سر بردیم و عهد و پیمان بستیم که اگر از تلسم آسف نجات پیدا کردیم زن و شوهر بشیم ولی بعد از چند شب اکوان دیو ناپاک متوجه شد که من و این جوان عاشق هم شدیم این بود که اون رو به زندان انداخت و روزی صد ضرب شلاق به اون میزد. تا اینکه تو پیدا شدی و تلسم حمام بلور رو شکستی و سه برادرش رو هم کشتی. اکوان دیو ناپاک رفت و ماه عالمگیر رو آورد و اینجا حبس کرد. تا اینکه تو اومدی و سوسن جادو تو رو شبیه آهو کرد. اکوان دیو روزه این خبرها رو برای من می آورد. وقتی که تو از جلد آهو نجات پیدا کردی و سوسن رو کشتی و پیش من اومدی اکماندیو به شکار رفته بود. من هم تو رو نوازش کردم و میخواستم که دیو بیاد و تو اونو بکشی. اما تو بیتاقتی میکردی و موکل من تو رو هر دفعه به یک طرف پرت میکرد تا حالا که اون رو کشتی و جهانی رو از دستش نجات دادی. منم رفتم این جوان رو از بند نجات دادم و آوردم. دیگه حالا شما صاحب اختیار هستین؟ شخصات خندید و گفه ای نازلین. این نازنین سرنوشت اینطور بود که این اتفاق ها بیفته تا تلزم شکسته بشه. بعد هم رو به اون جوان کرد و گفه ای برادر تو بگو بدونم چه کسی هستی و نسبت به کی میرسه. اون جوان هم گفت من پاتشاه زاده شهر سرندیب هستم و پسر ملک بحمنشاه. اسمم ملک دارابه که دو سال دیو منو آورده و اینجا زندانی کرده شاهزاده گفه ای برادر من به شهر سرندی پیش پدرت رفتم و دیو رو کشتم و بعد داوطلب شدم که بیام تو رو نجات بدم پدرت شب و روز در فراغ تو گریه می کرد. خدا رو شد که تل شکسته شد و تو نجات پیدا کردی و اگر من با یار و آذرچهر بی ادبی کردم تقصیر از من نبود در تلزم در هر کاری بی اختیار بودم و نمیدونستم که این دختر یار توست. القصر اسقاهی کرد و از جاش بلند شد و بعد از اون هم پیرمردی با ریش سفیدی جلو اومد و دست شاهزاده رو بوسید و گفت من موکل این تلسم هستم. های زیادی در اینجا هست که همش به تو تعلق داره. و دست کلیدی به دست شاهزاده داد و گفت این کلیدها رو بگیر و این درها رو باز کن و هرچه در اینجا هست مال توست شاهزاده کلیدها رو گرفت رفت تا به در اتاقی رسید در و باز کرد و های زر و جواهر زیادی دید در هر اتاقی رو که باز میکرد طلا و جواهرات زیادی میدید تا اینکه به در اتاقی رسید و صدای ناله و گریهای رو شنید وقتی که در اتاق رو باز کرد و وارد شد، چشمش به زن زیبایی افتاد که دست و پاش رو با تناب ابریشمی بسته بودند و در گوشه ای انداخته بودند و ناله می کرد. شاهزاده جلو رفت و ازش پرسید ای بانو بگو بدونم تو کی؟ چه کاره زن نگاه کرد و شاهزاده رو دید و گفت ای جوان دست و پامو باز کن تا شرح حالم را برات بگم. شخص زاده اونو باز کرد و دید اون یک پریزاده و زن گفت اسم من شهراشو پری است بانوی حرم شهبال شاه پری مدتی است که اکوان دیو منو دزدیده و آورده در این مکانو و به بند کشیده و همه روز منو شلاق میزنه حالا که تو منو نجات دادی نمیدونم اکوان کجاست اگر بیاد تو و منو میکشه شاهزاده گفت خاطر باش که من اکباندیو رو کشتم و تلسم رو شکستم. اون زن که این حرف رو شنید پرزیده ی جوان بنی آدم بگو بدونم تو کی هستی از کدوم ولایتی چه کاره هستی؟ شاهزاده هم گفت من ملک جمشید پادش یه شهر زیربادم که به تلسم حمام بلور رفتم اونو شکستم دختر جهان آرای پری رو از دست اخ. دیو نجات دادم و چون سوسن جادو منو شبیه آهو کرده بود جهان آرای پری و دایش کمکم کردند تا اینکه از جلد آهو بیرون اومدم. بعد هم منو پیش شحبال شاه بود و یک شب هم میهمان اون بودم و چون شنیدم که اکمان دیو تو رو هم به این تلسم آورده عهد کردم که تو رو هم نجات بدم. شهراشوپری که شاهزاده را شناخت ازش تشکر زیادی کرد و گفت ای جوان فدای تو که هم دخترم نجات دادی همکنون من از تلسم آسف نجات دادی تا قیام قیامت بر تایفه به پریزات ها منت بزرگی داری و چون من چیزی ندارم که جبران این کار تو باشه اگر قبول کنی دخترم جهان آرای پری رو به تو پیشکش می کنم. که تا زنده است کنیز تو باشه شخصاد خندید و گفت ای ملکه دختر تو صاحب داره خدا اونو به صاحبش ببخشه. او گفت دختر من که نام زد نداشت شاید در نبود من اونو شوهر دادن، شاهزاده گفت شهربال شاه اونو شوهر نداده من اونو شوهر دادم ای ملکه بدون که ملک فریدون پادشاهزاده ی شهر اکره در تلسم حمام بلور عاشق دخترت شد و از من عهد گرفت که جهان آرای پری رو براش پیدا کنم و به اون برسونم شهراشوب هم گفت اختیار دختر من به دست تو به هر کس که میخوای به کنیزی بده حالا خوبه که منو مرخص کنی تا برم و خبر شکستن تلسم رو به شهبالشاه برسونم. شاهزاده هم اونا مرخص کرد و اون هم شبیه به کبوتری شد و به آسمان پرواز کرد و دنبال کارش رفت. شاهزاده دوباره بلند شد و به باز کردن درهای اتاقهای دیگه پرداخت هر در رو هم که باز میکرد مان و ملال زیادی توش بود تا اینکه به در اتاقی رسید که باز صدای نالهٔ ضعیفی از اون بیرون میومد که میگفت ای پروردگار من تو میدونی که مدتی به دست این ناپاک گرفتارم هیچکس به فریادم نمیرسه اون جوون بیوفا هم که به دنبالم نیومد با اینکه میدونه من اینجا گرفتار و اسیرم پس یا منو مرگ بده یا از این بند بلا نجات بده شاهزاده از شنیدن این صدا آتیش به دلش افتاد و نزدیک بود قش کنه اما خودداری کرد و درو باز کرد و داخل اتاق شد و نگاه کرد دید در گوشه ای از اتاق چهار میخ بر زمین کردند چهار کلاف ابریشم هم بر چهار دست و پای یک نفر بستند و اونو به چهار میخ کشیدن و سنگ سنگینی هم روی سینش گذاشتند به طوری که هیچ حرکتی نمیتونه بکنه و دائم در حال ناله است. شاهزاده رفت بالای سرش و درست نگاه کرد و بعد از مدتی چشمش به یارش ماه عالمگیر افتاد. پس یک مرتبه صدای فریادش بلند شد و نعرهی کشید و بر زمین افتاد و از هوش رفت. وقتی به هوش اومد از جاش بلند شد و دید که یارش هم از حال رفته. پس با چشم گریان سنگ رو از روی سینش برداشت و اونو آزاد کرد. سرش رو روی پاهاش گذاشت و موهاش رو از گرد و خاک پاک کرد. و اشکش بر چهره دلبر افتاد و در این زمان دختر هم به حال اومد و چشم باز کرد و دید شخصی سرش رو نوازش میکنه و دست و پاشم بازه اول فکر کرد اکوان دیوه اما چون چشم باز کرد و خوب نگاه کرد چشمش به یارش ملک جمشید افتاد بلند شد آغوش باز کرد و شاهزاده رو در بغل گرفت و نعرهی کشید و از هوش رفت شاهزاده دست و بازوش رو مالید و صورتش رو بوسید و بعد از ساعتی دختر به هوش اومد و دوباره شاهزاده رو در آغوش گرفت و گفت قربانت بشم آیا تو ملک جمشید هستی یا چشم من در خواب داره تو رو میبینه؟ شاهزاده گفت یار وفادار من دردت بجونم خدا رو شک اگر چه زحمت زیادی کشیدم و های گوناگونی به سرم اومد ولی آقبت به مرادم رسیدم و یک بار دیگه صورت زیبای تو رو دیدم ماه عالمگیر گفت یار وفادار سرگذشت خودت رو برای من بگو تا بدونم چی به سرت اومده؟ شاهزاده سرگذشت خودش رو از اول تا آخر برای اون زیبارو تعریف کرد پس دختر یه زیادی کرد و گفت ای جوون هر روزی که تو یکی از برادرهای اکوان رو می‌کشتی اون ناپاک می اومد و تازیانه میزد و آزارم میداد و میگفت. امروز ملک جمشید یک برادر منو کشته و من به عوض اون تو رو شکنجه می‌کنم حالا خدا رو شد که یک بار دیگه روی تو رو دیدم و به آرزوی دلم رسیدم. حالا اگه بمیرم دیگه آرزویی ندارم. لکن دوست دارم جهان آرای پری رو که تو رو از جلد آهون نجات داد و برای نجات من فرستاد ببینم و تلافی خدمت هاش رو بکنم. شاهزاده گفت این نازمین. گویا روزگار سختی و زحمت به سر اومده اگه خدا بخواد به کام دل میرسی و جهان آرای پری رو هم میبینی. همونطور که این دو صحبت میکردن صدای قوقایی بلند شد. شاهزاده گفت دیگه نمیدونم چه خبره بعد هم بلند شد بیرون رفت و پرسید چه خبر شده گفتن چهار نردی و از آسمان فرود اومدند و تخت جواهر نشانی هم به دست دارند و فریاد میکشند ملک جمشید کجاست ما با کار داریم شاهزاده دست به شمشیر برد و گفت کجا هستند به من نشونشون بدید و از هیچ چیز هم نترسید در این لحظه چشم شاهزاده به چهار نردی و قریه کل افتاد که تختی از طلا رو روی زمین گذاشتند و پیرمرد ریش سپیدی هم بر بالای تخت نشسته و چون نردیب ها شاهزاده رو دیدند در برابرش به خاک افتادند شاهزاده پرسید شما کی هستید و از کجا میاد و سر کار شما با کیه که از بالای تخت پیرمرد بلند شد پایین اومد و دست ادب به سینه گذاشت و در برابر شاهزاده تعظیم کرد شاهزاده چشمش به جمال خواجه عبدالرحمن پری وزیر شحبال شاه پری افتاد و بنابراین شمشیرش رو کنار گذاشت و جلو رفت و اونو بغل کرد و گفت ای وزیر کجا بودی چه شده که اینجا اومدی؟ وزیر دست شاهزاده رو بوسید و گفت شهراشوپری بانوی حرم شهبالشاهپری که اومد و حکایت شکستن تلسم آسف و کشتن اکواندی رو گفت شهبالشاه منو با تخت خدمت شما فرستاد، که منتظر شماست البته که با ماه عالمگیر و سایر همراهان تشریف بیارید. شهزاد قبول کرد و دوباره پیش ماه عالمگیر برگشت و گفت ای نازنید تو دلت خواست که جهان آرای پری رو ببینی و اتفاقا شهبال شاه وزیرش رو با تخت طلا دنبال ما فرستاده. ماه عالمگیر از شنیدن این صحبت ها خیلی خوشحال شد و از جا بلند شد. شاساده هم دست اون رو گرفت و آورد روی تخت نشوند. ملک دالاب رو هم تلوید و گفت کاغذی برای پدرت ملک بهمن شاه بنویس و بده ببرند که تو و یارت آزرچه همراه من به شهر پریزادها رفتی. ملک داراب هم نامه ای نوشت و همه اتفاقات رو هم در اون توضیح داد و گفت البته که ما به زودی خدمت شما هم می رسیم و اون رو هم به دست یکی از اهالی سرندی داد که به دست پدرش برسونند بعد از اون ملک جمشید در اتاق دیگه ای رو باز کرد و زر و جواهر زیادی از اون اتاق بیرون ریخت. و کسانی رو هم که در تلیس مافتاده بودن همه رو طلبید و به هر کدوم مقدار زر و جواهر داد و گفت شما برید به شهر سرندیب و از اونجا خودتو آماده کنید و هر کدوم به ولایتهای خودتون برگردید. همه یکی یکی جلو اومدند و از شاهزاده تشکر کردند و رفتند. شاهزاده زر و جواهر زیادی هم به وزیر داد و مقداری جواهر گرانبها و اسباب قیمتی برای شهبال شاه هم برداشت و بعد هم در اتاقها رو مهر کرد و به دست همون موکل تلسم سپرد. بالای تخت نشست و اون چهار نردیف تخت رو بلند کردند و به آسمان رفتند بعد از سه ساعت دیگه در میان چمنی تخت رو به زمین گذاشتند و شاهزاده نگاه کرد و دید در یک طرف اون چمنزاریه و جمعیت زیادی استادند و پرسید اینا چه کسانی هستند وزیر گفت جبون تایفه پریزات ها هستند که از شهر برای استقبال تو اومدند القصه کاروان شاهزاده به سمت بارگاه شاه در حرکت بود همه دست و کف میزدند و خوشحال بودند و هر چند قدم هم گاو یا شطوری رو قربانی میکردند تا اینکه به در بارگاه و باغ حرم رسیدند دخترها رو به باغ حرم پیش جهان آرای پری فرستادند و شاهزاده و ملک داراب هم از در بارگاه داخل شدند و در برابر شهبالشاه ایستادند. شهبالشاه از جا پرید و دست شاهزاده رو گرفت و پیشانیش رو بوسید و اون رو در طرف راست خودش قرار داد و ملکداراب داراب رو هم در طرف چپ. امیران و بزرگان همگی در برابر اونها ایستادند و تعظیم کردند شحبال شاه کوفی فرزند اگر من جونم رو هم تو کنم کمه به جهت اون که زن و دخترم رو از دست نردیف ها نجات دادی و پیش پریزات ها سرفرازم کردی حالا حتی اگه پادشاهیم رو هم بهت بدم بازم کاری نکردم شاهزاده جواهر آلاتی رو هم که همراه خودش آورده بود به شهبالشا تقدیم کرد و گفت ای پادشا اگه من به شما خدمت کردم دختر جهان آرا هم به گردن من حق بزرگی داره اگر اون و دایه خاتون نبودن من تا قیام قیامت شبیه آهو میموندم اون بود که من رو از جلد آهو درآورد. پس تا زنده هستم منت دار او هستم الغسن بعد از اون در حرمخانه جهان آرای پری جشنی به کرد و وقتی همه رسیدن اون رفت و دست مادرش بانوی حرم رو گرفت و برد بر بالای تخت پهلوی شاهبال شاه نشون دست شاهزاده و ماه عالمگیر رو هم گرفت و برد بالای تخت طلای دیگه ای نشون دست ملک دارا و آزرچه رو هم گرفت و در کنار هم نشون و خودش همچون غریبان در گوشه نشست و اشاره کرد به دخترها که مجلس رو گرم کنند. صدای دف و سنتور و رباب از همه جا بلند شد و در باغ و غصر پیچید. جام های شراب هم به چرخش در آمدند و پیوسته به دست شاهزاده و اهل مجلس می رسید. همه سرشون گرم خودشون بود که ناگهان ماه عالمگیر آهسته به شاهزاده گفت برگرد به پایین مجلس نگاهی کن شاهزاده چنین کرد و دید که جهان آرای پری در گوشه ای قصر همچون غریبان نشسته جامی در برابر خودش گذاشته سر به دیوار تکیه داده و با گردن کج اشک از گوشه ی چشماش جاری و با با حسرت نگاه میکنه و آه سرد میکشه شاهزاده آتیش به جونش افتاد و جگرش کباب شد و به ماها عالمگیر گیر کرد و گفت ای نازنین جهان آرا حق داره و خوبه که تا حالا از فراغ برادرت نمورده در این مجلس که هر کدوم ما با یار خودمون مشغولیم یار اون نیست چطور طاقت بیاره بنابراین از جاش بلند شد و در برابر شهبالشا تعظیم کرد و گفت پادشاه ها من آرزویی در دلم هست که ازتون خواهش میکنم اونو براورده کنید شهبالشاه گفت ای فرزند هر بگی اطاعت میشه شاهزاد گفت ای پادشاه من برادر خوانده ای دارم که مدتی اونو ندیدم شب و روز به فکرشم. روزی که ازش خدا حافظی کردم و به تلسم آسف اومدم ناخوش بود مدت ها هم هست که ازش خبری ندارم حالا دلم میخواد که اونم توی این مجلس باشه و دو روزی با ما خوش باشه. خواهش دارم نره بفرستین بره و برادر منو برداره و بیاره. شخبال شاه گفت ای فرزند برادرت کیه و در کجاست اسمش چیه بگو تا بفرستم اونو بیارن. شاهزاده گفت برادر من ملک فریدون پسر ملک نعمان شاهه. شهبالشاه حکم کرد طوفان دیو اومد و شهبالشاه به اون گفت ای طوفان باید بری به ولایت ملک نعمانشاه و ملک فریدون پسر ملک نعمانشاه رو برداری و بیاری. شاهزاده هم نشانی های ملک فریدون رو داد و طوفان دیو هم فورا رفت و به بارگاه ملک نعمانشاه رسید و گریبان ملک فریدون رو گرفت و از زمین بلند کرد و به آسمون برد. که صدای شیون قلامان بلند شد و همه به سر و سینه خود میزدند زدند و صدای این قوقا در حرم سرا به گوش شاه رسید. سرا بیرون دوید و پرسید چه خبره گفتن دست مهیبی از آسمان پیدا شد و گریبان ملک جمشید رو گرفت و با آسمان برد و از نظرها ناپدید شد. پادشاه بسیار غمگین شد و گفت دیگه زندگی دنیا برای من حرومه که پیر شدم و دو فرزند خودم رو هم از دست دادم و در غم و اندوه عمیقی فرو رفت. اما از اون طرف انگامی که طوفان دیو ملک فریدون رو به زمین گذاشت اون چشم بازگرد و دید در میان باقی ایستاده مثل بهشت. تعجب کرد که این باغ کجاست و کی اونو به اینجا آورده. حیرون و سرگردون بود که به کجا بره. توفان دیو هم رفت در برابر شحبالشا تعظیم کرد و گفت ملک فریدون رو آورده و در میان باغه ملک جمشید از جا پرید ماه عالمگیر هم بلند شد آذرچهره و ملک داراب هم از جا بلند شدند و همه گی به باغ رفتند در این راستا هم ملک فریدون همونطور سرگردون بود و صدای قوقایی شنید و برگشت دید در برابرش سر و ملک جمشید نامدار پیدا شده دست به چشم خودش ممالید که آیا درست میبینه واقعا ملک جمشیده که دید خواهرش ماه عالمگیر هم با لباس های گرانبها و سر و صورت آراسته و زیبا نمایان شد. ملک جمشید رسید و بغل باز کرد و ملک فریدون رو در آغوش گرفت و گفت برادر جان کجا بودی؟ ملک فریدون هم اونو در آغوش گرفت و فریادی از شادی زد و گفت برادر جان تو بگو این مدت کجا بودی که آلمی چشم به هستند. هستن. ملک جمشید گفت حالا جای این حرفان نیست خواهرت ماه عالمگیر رو دریا. که دختر رسید و خودش رو به قدم برادر انداخت و از هوش رفت. ملک فریدون اونو گرفت تا دختر به هوش اومد و یکدیگر رو بوسیدن و گفت خواهر جان خبر نداری از حال مادرین مدت پدر و مادرمون شب و روز در گریه و زاری بودن. دختر گفت برادر جان به زودی همه چیز رو خواهی فهمید. ملک فریزون در برابر خود یک دختر و پسر زیبا رو همدید و از ملک جمشید پرسیدین باغ کجاست شما اینجا چه کار می‌کنید این پسر و دختر کی هستند ملک جمشید خندید و گفت این پسر ملک دارا، پسر ملک بهمنشاه و این دختر هم پادشاهزاده زاده آباد و نامش آزرچهره که در تلسمه آصف بودند و من اونا رو نجات دادم و اینجا هم باغ ارم شخبال شاهپریس شخ که در شهر پریزاد هست. ملک فریدون که نام شهر پریزاد رو شنید آه سردی کشید و اشک از گوشه چشش سرازیر شد. ملک جمشید گفت برادر جان گریه نکن که یار جهان آرای پری هم اینجاست و از فراغ تو شب و روز نداره من الان دست اون رو در دست تو میذارم. با شنیدن این حرف ملک فریدون دست ملک جمشید رو بوسید و او دعا کرد و گفت اگر چنین کنین که تا قیام قیامت حلقه غلامی تو رو به گوش خواهم کشید شاهزاده دست اونو گرفت و گفت ای برادر اکنون به خدمت شاه بالشاغپری میریم و با عدب باش و از دیدن یارت بی اختیار نشو که رسوا میشی از اون طرف جهان آرای پری که شنید یارش رسیده لرز بر اندامش نشست و نتونست طاقت بیاره و دید که رسوا میشه بنابراین به هر بهانه بود بلند شد از مجلس بیرون اومد در گوشه ی ایوان قصر ایستاد و نگاه میکرد که دید در خیابان ملک جمشید دست ملک فریدون رو گرفته و میان. چشمش که بعد از این همه مدت به جمال یارش افتاد رنگ از صورتش پرید و بدنش به لرزه افتاد و دلش تبید. هر چه خاص خود داری کنه نتونست ناله ای زد و به زمین افتاد. دایه خاتون دوید و بازوش رو گرفت و اونو به گوشه برد تا چشم باز کرد و بلند شد و دامن دایه رو گرفت و گفت دایه جانم یارم کجا را؟ دایه گفت اینات این چرا اینطوری میکنی آروم باش؟ الغصه از اون طرف ملک جمشید ملک فریدون رو به برابر شهبالشاه رسوند و ملک فریدون دست ادب بر سینه گذاشت و تعظیم کرد و گفت پادشاه ها عمر دولتتون پاینده باشد. شهبالشاه هم نگاهی به اون کرد و ناگهان محبت او بر دلش افتاد و به ملک جمشید گفت ای فرزند. این جوان که دل منو برد کیست؟ شاهزاده هم گفت ملک فریدون پادشاه زاده ای که به عرضتون رسوندم. شهبالشاه بغل باز کرد و اونو در آغوش گرفت و خوش کرد. از اون طرف هم جهان آرای پری بیتاب شده بود و میخواست که به مجلس بره اما دایه اجازه نمیداد و میگفت بیتابی نکن اجازه بده تا پدر تو رو به طلبه. القصه شاهزاده ملک جمشید به شاهبالشاه گفت این مجلس صاحبی داره که بدون وجود اون صفایی از دست رفته است. خواهش میکنم که جهان آرای رو که صاحب مجلسه صدا کنین تا بیاد مجلس رو گرم کنه. شخبالشاه متوجه شد و خندید و گفت من اون رو از مجلس بیرون نکردم خودش رفته. شخصات دوباره گفت به یادتون هست که قبل از رفتن من به تلسم آسف جهان آرای پری رو به من بخشیدید و من گفتم او صاحب داره حالا تمنا دارم که ملک فریدون رو به چاکری خود قبول کنید و دست جهان آرای پیر رو به دست اون بذارید. شهربال شاه خندید و گفته جان فرزندا سوده باش. اختیار جان و مال و ایال من همه در دست توست. بعد هم رو به کنیزها کرد و گفت جهانهارا رو بیارید. کنیزها رفتند و به او گفتند مجدک تو رو طلبید و وقایع رو هم تعریف کردند. جهان آرای پری هم با حالی مشل و دست و پای لرزان داخل قصر و مجلس شد و در برابر پدرش تعظیم کرد و سر به زیر انداخت و ایستاد. شهبال شاه اون رو طلبید و در کنار خودش نشوند و دست نوازش بر سر و روش رو روبه شاهزاده کرد و گفت فرزند ملک فریدون رو هم بیار. شاهزاده هم دست ملک فریدون رو گرفت و نزدیک تخت برد و شاه دست جهان آرار رو در دست ملک فریدون گذاشت و گفت دخترم جهان آرار رو به تو بخشیدم. ملک فریدون هم دست شاه رو بوسید و تعظیم کرد و گفت قربانتان کردم. من کجا و این لطف بی پایان شاه کجا؟ شحبال شاه از جا بلند شد و گفت ای فرزندان من به بارگاه می روم و شما مشغول ای شنوش و اشرت خود باشید و روزی دو سه ساعت هم به بارگاه بیاین تا امیران و وزیران و مردم شهر شما رو ببینند دوستان و هم جان این هم از قسمت یازدهم این داستان ولی هنوز داستان به پایان نرسیه و ماجراهای دیگه ای هم در پیشه پس منتظر باشید تا در قسمت بعدی براتون روایت کنیم در پناه نور و عشق الهی باشید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها قصه هایی از غول ها و کتوله ها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 در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسان صوتی